دوستان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. این کلاس بخشی از دوره مقدماتی بررسی کل کتاب مقدس هست. ما زمن بررسی های خودمون عهد قدیم رو به پایان رسوندیم و اکنون در حال بررسی پنجمین کتاب از عهد جدید یعنی کتاب اعمال رسولان هستیم. گفتیم که کتاب اعمال رسولان کتاب تاریخ عهد جدیدی که به تاریخ شکلگیریه کلیساها میپردازه خوشحالیم که در این جلسه نیز با ما همرا هستید ما امروز در این جلسه آماده میشیم و وارد بخش دیگری از عهد جدید میشیم که شامل رسالات پولس رسوله اون ده از شما که در تمام این کلاس ها با ما بودین خیلی وقتا شنیدین که من میگم پولس رسول تقریبا نصف عهد جدید رو نوشته بعضیا میگن پولس تا نامه نوشته و بعضی رو میگن 14 تا. برای اینکه خیلیا معتقدند که رساله ای ابرانیان رو پولس نوشته و بعضی معتقدن که این طور نیست. وقتی که شروع به بررسی این سیزده نامه پولوس پولس رسول بکنیم، از نامه رومیان شروع میکنیم. باید دوباره یادآوری کنم که کتابهای موجود در کتاب مقدس براساس ترتیب تاریخ زمانی نیستن. رومیان اولین نامه ای نیست که پولس نوشته. محققین معتقدن که پولوس این نامه رو به رومیان از شهر قرنتوس در سومین سفر خدمتیش بعد از خدمتش توی افسوس نوشته. وقتی که وارد مفهوم این نامه میشید چندان طول نمی کشه که متوجه میشید که نامه رو در اواخر خدمتش نوشته زمانی که کامل شده و تجربه عالی کسب کرده. این نامه پولوس یک شاهکار الهیاتی از پولس رسوله محتوای این نامه منحصرا برای مسیحیان رومی نیست نامه‌های بعد از رومیان مثل قرنتیان و گلاتیان برخلاف این نامه با مشکلات محلی در مکان‌های خاص سر و کار داره ولی رساله رومیان یک مبحث الهیاتی عالیه که می شده برای هر کسی فرستاده بشه. محققین بر این باورند که پولس این نامه رو در اون زمان به این دلیل به رومیان نوشته که روم پایتخت دنیا بوده این نامه پیغامی جهانی داره پولس میتونسته اونو به هر کسی بفرسته پیغام این نامه برای همه هست همونطور که در این شاهکار الهیاتی پولس رسول جلو میرید میفهمید که این رساله الهیاتی در مورد یک کلمه هست اون کلمه پارساییه در مسئله فریسی و خراجگیر مسیح به ما گفته که دو مرد برای دعا کردن به معبد رفتن یکیشون خراجگیر بود و اون یکی یک فریسی بود مسیح گفته که فریسی برای خودش دعا کرد در واقع فریسی واقعا دعا نکرد او در ملعه آم با خودش حرف زد فریسی در کنیسه به همه گفت که چه مرد خوبیه او دعای خودش رو به حضور خدا نبرد او گفت خدایا تو را شکر میکنم که مانند دیگر مردمان نیستم دوبار در هفته روزه میگیرم از هرچه به دست میارم ده یک میدم خوشحالم که مثل دیگران مخصوصا مثل این خراجگیر نیستم. مرد دوم که برای دعا به معبد اومد یعنی همون خراجگیر یک کنجیستاد و حتی نتونست چشماشو به سمت آسمون بلند کنه. به سینه خودش زد که به معنی فروتنی و ندامت بود و گفت خدایا بر من گناهکار رحم کن. مسیح به ما میگه که این مرد دومی پارساش شمرده شده و به خانه رفت. این اولین دفعی هست که با این کلمه زیبا در دراحت جدید روبرو میشیم وقتی که این خراجگیر این دعای ساده رو میکنه که خدا یا بر من گناه کار رحم کن در نظر خدا عادل شمرده میشه کلمه پارسایی به این معنیه که درست مثل اینه که هرگز گناه نکرده بودیم معنیش فراتر از اینه که سرپن بخشیده شدید که خدا شما رو بخشیده معنیش اینه که خدا شما رو عادل شمرده مثل اینه که هرگز گناه نکرده باشی فرض کنید که زندگیتون مثل یک کتاب باشه و یک روز روی صندلی داوری مسیح خدا بخواد که کتاب زندگیتون رو بخونه حالا تصور کنین زمانی که کتاب زندگیتون توسط خدا خونده میشه جایی که گناهانتون شروع میشن خدا اون صفحات رو جدا میکنه زمانی که خدا کتاب زندگیتون رو میخونه در نظر او انگار که هیچ گناهی اونجا وجود نداره این معنی کلمه پارساییه در این کوچک زیبا مسیح به ما میگه که اون حقیقت داره. مسیح به ما میگه که خبر خوشی اینه که هر مرد یا زن، هر فرد جوان یا هر پسر و دختری که این دعای ساده رو بکنه که خدا یا بر من گناهکار رحم کن میتونه عادل یا پارساش مرده بشه. پولس رسول در این نامه عالی به رومیان به ما میگه که چطور خداوند با این معجزه در زندگی های ما کار میکنه. نامه پولوس به رومیان جامعترین رسالات در مورد عادل شمرده شدگی یا نجات، نجات یا رسگاری کلمه دیگری برای پارسایی هست. کتاب رومیان جامع ترین رسالات در مورد نجات ما یا عادل شمرده شدگی ماست. در نامه پولس به رومیان پولس به ما میگه که خدا چطور گناهکاران رو عادل میشماره. برای تمرکز بیشتر بر این کلمه دو مرد رو تصور کنین که به خاطر جرمهاشون محکوم شدن و هر دو با حکم 20 سال به زندان فرستاده میشه. بعد از دوازده سال زندان یکیشون آزاد میشه. او مثل هر فرد آزاد دیگه ای وارد جامعه میشه، اگرچه همیشه این داغ ننگ رو بر پیشونی داره که سابقه دار بوده. این مسئله البته وضع او رو همونطور که به زندگیش برمیگرده محدود میکنه. مرد دیگه تجربه متفاوتی داره. بعد از اینکه دوره محکومیت 20 سالش رو تموم میکنه، یک نفر موقع مرگش اعتراف به جرمی میکنه که او به خاطرش محکوم شده بود. یه دادگاه دیگه تشکیل میشه و تمام شاهدین آورده میشن و حقیقت معلوم میشه که در اصل این مرد بیگناه بوده. حالا آیا فرماندار ایالتی ازش عذرخواهی میکنه؟ خب اون نمیتونسته بخشیده بشه. او هیچ کاری انجام نداده. این مرد میتونه درخواست کنه که از تمام اون سوابقش پاک بشه یا عادل اعلام بشه. در حقیقت اون عادله، اون نمیخواد که سرفنزش ازش عذر خواهی بشه و آزاد بشه. نمیخواد به عنوان یک فرد سابقه دار به جامعه فرستاده بشه. او میخواد که تمام دنیا بدونن که او مقصر نیست و هیچ وقت نبوده. او میخواد در نگاه جامعه روسفیت باشه یا عادل چمرده بشه. سیستم قانونی ما برای کسی که بیگناه میتونه این کارو بکنه. اگرچه نامه پولس به رومیان به ما میگه چطور خدا این کار رو برای کسی که گناهکار انجام میده اما سیستم قانونی ما نمیتونه یک فرد گناهکار رو مبرا کنه یا او رو به عنوان شخصی حارساب و عادل معرفی کنه که انگار هیچ گناهی مرتکب نشده. اما خدا میتونه. در نامه پولس به رومیان پولس به ما میگه که چطور خداوند میتونه این کار بکنه. در نامه پولس به رومیان 16 باب وجود داره. این شانزده باب از اولین آیه تا آخرین آیه. یک مباحثه دنباله دار هست. تکلیف شما اینه که کتاب رومیان رو در یک جلسه بخونید و سعی کنید که مباحثات کتاب رومیان رو برای خودتون تعریف کنید. ازتون میخوام که این کارو بکنید چون که کتاب رومیان از اول تا آخرش یک مباحثه. شما نمیتونید بزرگترین شاهکار پولوس رو با گوش کردن به رادیو و در حالی که تلویزیون تماشا میکنید بخونید و درک کنید. باید تلویزیون رو خاموش کنید. و واقعا در اون تمرکز کنید. برای انجامش به روح القدس نیاز خواهید داشت. با کمک روح القدس و تمرکز بیشتر میتونید مباحث این کتاب رو درد کنید. منظورم اینه که بفهمید ایده اصلی چیه و پیغام این کتاب چیه. برای درک مبحث این نامه مشاهده کنید که این 16 باب به روش سریحی تقسیم بندی شده. چهار تا باب اول نامه پولوس به رومیان در مورد آدل چمردشدگی درباره، گناهکاران صحبت میکنه. در اون چهار فصل اول روح القدس از طریق پولس رسول به ما استدلالی بسیار قانع کننده میده که ما گناهکار هستیم. شما تا وقتی میدونید گناهکارید به اینکه عادل شمرده بشید علاغی نشون نمیدید. بنابراین این چهار باب اول کلمه زیبای پارسایی رو به گناهکاران ربط میده. چهار باب دوم از باب پنجم تا هشتم پارسایی رو به کسی که در حقیقت پارسا هست ربط میده. وقتی خدا شما را عادل و پارسا میشماره درست مثل اینکه قبلا هیچ گناهی نکردید از شما انتظار میره که چطور زندگی کنید و چطور ممکنه که به اون روش زندگی کنید زمانی که خداوند شما را عادل اعلام میکنه جهان از شما انتظار داره که درست زندگی کنید خداوند به محض اینکه شما را عادل اعلام میکنه از شما انتظار داره که درست زندگی کنید حالا چطور درست زندگی میکنید چطور به عنوان یه شخص پارسا زندگی میکنید این پیغام چهار باب دوم این نامه است در این چهارباب باب پولس رسول از طریق روح القدس با کشم کش هایی که در ارتباط با زندگی کردن در پارسایی در قوت روح القدس مواجه میشیم صحبت میکنه. در باب نهم تا 11 این نامه پولس پارسایی رو به کل دنیا و به اسرائیل ربط میده باب نهم دهم و 11 نامه پولس رسول به رومیان سه تا از مهمترین بابهای کتاب مقدس هستند که درباره نبوت مطابق با کتاب مقدس صحبت میکنه اگر نبوت کتاب مقدسی رو مطالعه کنید از خودتون میپرسید که چه اتفاقاتی در دنیا قرار بیفته از خودتون میپرسید که آیا خدا ای برای کمال تاریخ بشر داره آیا خدا ای برای تکمیل تاریخ بشر داره آیا خدا ای داره آیا تاریخ بر اساس اون برنامه تکمیل خواهد شد این سباب بابهای خیلی مهمی در مورد اون موضوع هستند. وقتی که انبیا رو بررسی می کردیم، دیدیم که خداوند واقعاً برنامه ای داره. انبیا در مورد اون نقشه ها در طی صدها و صدها سال با ما صحبت کردند. در عهد جدید رسولانی که این نامه ها رو نوشتن هم درباره یه نقشه خداوند برای تکمیل تاریخ بشر با ما صحبت کردند. سه تا از مهمترین بابهای کتاب مقدس در مورد اون موضوع باب های نه، ده و یازده رساله رومیان هستند. در اون باب پولس به ما میگه که اسرائیل کلید اتفاقاتی که قرار در دنیا بیفته، اگر میخواد بدونید که مطابق با نبوت کتاب مقدسی چه اتفاقاتی در دنیا قرار بیفته، نگاهتون رو بر اسرائیل متمرکز بکنید. پولس در اون سباب به ما میگه که اسرائیل یک مثال از انتخابه. واقعیت اینه که خدا افراد رو برای نجات گزینش میکنه. اگر فکر میکنید که نمیتونه اینطوری باشه و این عادلانه نیست، پس با احتیاط چی کار اون چیزی که اعطاعیق در موردش صحبت میکنه اعطاعیق با ما در مورد ملت‌های زیادی که در تاریخ باستان وجود داشتن صحبت میکنه اما خدا فقط یکی رو انتخاب کرد خدا قوم اسرائیل رو انتخاب کرد تا قوم منتخبش باشه خداوند اونها رو برای نجات انتخاب کرد اونها تصویر بزرگی از نظریه انتخاب و این حقیقت که خداوند مردم رو برای نجات انتخاب میکنه در کتاب مقدس هست اگرچه در این سبابه رومیان نه ده و 11 پولس به ما میگه که اسرائیل در این صفحات کتاب مقدس به عنوان یکی از بزرگترین تصاویر از اراده آزاد یا تصمیم آزادانه است که در کتاب مقدس داریم. این حقیقت داره چون اسرائیل تصمیم گرفته که انتخاب شده نباشه. اسرائیل عیسی مسیح رو رد کرد و نجات رو رد کرد. بنابراین پولس این مطلب جالب رو در رومیان 9 ده و بخصوص خصوص باب 11 به ما میگه. پولس در رومیان 11 به ما میگه که برای مجازات کردن یهودیان برای تنبیه یهودیان به خاطر رد کردن مسیح موعود خداوند به سمت غیر یهودیان میره و از زمانی که یهودیان مسیح رو رد کردن خداوند غیر یهودیان رو نجات داده. زمانی که خداوند به اندازه کافی برای تنبیه اسرائیلی ها و به خاطر اون رد کردن غیر یهودیان رو نجات داد بعد همونطور که پولس در رومیان 11-26 به ما میگه دوباره خدا به سمت یهودیان برخواهد خواهد گشت و تمام اسرائیل نجات خواهند یافت. تمامی اسرائیل دوباره نجات پیدا خواهند کرد و این یک نبوته کتاب مقدسی جالبه. معنیش اینه که همونطوری که اسرائیل رو نگاه می‌کنید، می‌تونید به دنبال دو تا بازگشت باشید. می‌تونید به دنبال بازگشت جغرافیایی اسرائیل به سرزمینش باشید که ما اون رو در عصر خودمون در 1948 دیدیم و انبیا اون رو نبوت کرده بودند. و اون در عصر ما در سرزمین مقدس انجام شده اما این انبیا که بازگشت جغرافیایی اسرائیل رو به سرزمینش نبوت کرده بودن بازگشت اسرائیل به سمت خدای خودشان رو هم نبوت کرده اینجا در رومیان 9 10 و 11 پولس داره بازگشت روحانی اسرائیل به سمت خدای خودش رو نبوت میکنه بازگشت جغرافیایی به سرزمین اتفاق افتاده میتونید به اونجا برید و ببینید اما بازگشت روحانی هنوز اتفاق نیفتاده. انبیا و پولس رسول به ما میگن که اون اتفاق خواهد افتاد. در رومیان 9، 10 و 11 پولس پارسایی رو به کل دنیا و مخصوصا به اسرائیل ربط میده. پولس رسول در این نبوت جالبش به ما نشون میده که چطور خداوند میخواد نقشه خودش برای پارسایی رو از طریق اسرائیل به کل دنیا ربط بده. شما رو تشویق میکنم که یک دانشجوی نبوت کتاب مقدسی بشید اون وقت بسیاری از نبوت های کتاب مقدس رو که اجرا شدن مطالعه می کنید و میفهمید مثل این نبوت پولس در رومیان باب نهم دهم و 11دهم و اما نبوت های زیادی در کتاب مقدس هست که هنوز اجرا نشدن. اونا رو مطالعه کنید نبوت های کتاب مقدسی که برآورده شدن باید شما رو به باور کردن نبوت هایی که هنوز اجرا نشدن مثل آمدن دوباره ایسای مسیح تشویق کنند که اونها به روش خداوند و در زمان خداوند به اجرا در خواهند اومد. نصفی از این نبوت پولس در رابطه با اسرائیل به مرحله اجرا در اومده و نصف دیگرش هنوز برآورده نشده. بازگشت جغرافیایی اسرائیل از کشورهای سراسر این دنیا یک حقیقت تاریخی انکارناپذیره. بازگشت جغرافیایی اسرائیل باید به ما این امید رو بده که باور کنیم اسرائیل یک بازگشت روحانی رو هم تجربه خواهد کرد زمانی که انبیاء یهودی یک بار دیگه مثل اشعیا و ارمیا موعظه خواهند کرد دوباره میخوام شما رو همونطور که کتاب رومیان رو میخونیم و به پیش میریم به چالش بکشم که ببینید که آیا میتونید بعضی از نظرات اصلی رو تشخیص بدید و بعدش اینکه کدومش اصلیه زمانی که به بابای دوازده لا شانزده نامه پولس به رومیان میرسید بخش کاربرد عملی نامه پولس رو میخونید. در بررسی که از این نامه اول پولس می کنیم، طرحی رو کشف خواهیم کرد. هر کدوم از نامه‌های پولس به دو بخش تقسیم میشه. اول بخش تعلیمی نامه رو دارید و بعد قسمت عملیه نامه رو میبینید. اگر یک نامه پولس شش باب داشته باشه، اون اغلب سه باب رو برای تعلیم مینویسه و سه باب رو به صورت کاربردی مینویسه. بعضی وقتا سه 4 روم نامه تعلیم و یک 4 عملیه. همیشه در جستجوی اون بخش در نامه‌های پولوس باشید. قسمت کاربوردی اغلب با کلمه بنابرین شروع میشه. به همین دلیل وقتی که نامه‌های پولوس رو میخونید، هر دفعه که کلمه بنابرین رو پیدا میکنید، اونجا توقف کنید و ببینید که چی هست. بنابراین معمولا قسمت کاربوردی نامه رو معرفی میکنه. اون تقریبا مثل اینه که پولوس داره مینویسه و کسی میپرسه خوب که چی پولوس؟ و پولوس جواب میده بهت میگم که چیه بعد پولوس کلمه بنابراین رو استفاده میکنه و بخش کاربردی نامشو شروع میکنه یادتون باشه که نامه پولوس به رومیان میتونه به چهار بخش تقسیم بشه همونطور که به این چهار بخش از نزدیک نگاه میکنیم بیایید با هم برون بخش اول با به یک تا چهار تمرکز کنیم جایی که پولوس مفهوم پارسایی رو به گناهکاران نسبت میده اولین نکته ای که پولوس میگه اینه که همه ما به و در حقیقت گناهکاری. من داستانی را از یک کشیش وابسته به کلیسایی پروتستان در انگلستان شنیدم که در یک بخش خیلی ثروتمند لندن قرار داشت. یک دختر کوچولوی خیابانی به هر طریقی راه خودش رو به سمت کلیسای او پیدا میکنه. اون دختر میره و وقتی که او در رو باز میکنه، دختر کوچولو رو میبینه و از ظاهرش معلومه که از محلهای فقیرنشین لندنه. او میگه جناب کشیش، مادرم مریضه و داره میمیره و از شما میخواد که او رو بیارید داخل کشیش میگه من معذرت میخوام متوجه نشدم. دختر کوچولو میگه مادرم داره میمیره آقا و از شما میخواد که بیاریدش تو. بالاخره کشیش میفهمه که او چی میگه و تصمیم میگیره که با او بره. کشیش با او به یک زاغه میره. اونها به داخل یک ساختمان سرد میرن و او مادر دختر کوچولو رو میبینه که یک پاچه بود و داشت از مرض سل میموند. وقتی که کشیش حال او رو پرسید او گفت جناب کشیش آیا میتونی منو به داخل ببری؟ کشیش پرسید داخل کجا؟ زن جواب داد بهشت آقا من دارم میمیرم اون کشیش زیاد با چنین افرادی سر سرکار نداشت اما با اون زن در مورد استاد بزرگ مسیح صحبت کرد او با اون زن در مورد اصول اخلاقی عالی و سر سرکوه مسیح صحبت کرد زن حرف او رو قطع کرد و گفت جناب کشیش اون برای کسانی مثل من نیست کشیش در حالی که به سختی آب دهنش قورت میداد دوباره شروع کرد و این دفعه به او در مورد مسیح به عنوان یک نمونه عالی اخلاق زندگی عالی که او زندگی می کرد توضیح داد و دوباره زن صحبتش قطع کرد و گفت اونم برای کسایی مثل من نیست اون نمی تونه مربوط به من باشه بالاخره او گفت عهد جدید میگه که مسیح به دنیا آمد برای اینکه خدا دنیا اونقدر دوست داشت که یگان پسرش رو به عنوان نجات دهنده به این دنیا فرستاد و او به خاطر مردم خوب نیومد. او آمد تا گناهکاران رو به توبه دعوت کنه. اون زن لبخند زد و گفت اون برای کسایی مثل منه میخوام در این مورد بیشتر بشنوم بنابراین او به صحبت کردن بیشتر در مورد مسیح ادامه داد نجات دهنده دنیا کسی که آمد نه برای دعوت افراد پرهیزکار بلکه برای دعوت گناهکاران به توبه و داستان ادامه پیدا میکنه و میگه که او اون زن رو به داخل هدایت کرد و خودش نیز به داخل رفت کتاب رومیان به افرادی که گناهکارند و کسانی که میدونند که گناهکارند اشاره کرده این سرمشقی برای گناهکارانه اگر نمیدونید که گناهکارید شروع به خواندن نامه پولس به رومیان کنید طولی نمیکشه کشه که روح القدس از طریق پولس رسول شما رو متقاعد میکنه که عیسی مسیح به خاطر گناهکاران به این دنیا آمد. او به خاطر افرادی مثل من و شما آمد. در این چهار باب اول، پولس رسول اول از همه به ما در مورد غضب خدا بر علیه انسان میگه. او به ما میگه که غضب خدا بر انسانها قطعیه. قذبهای نزیر این زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارن. منظورش از اون در آیه 18 باب یک اینه که آنها گناهکاران حقیقت رو پایمال میکنند. اونها عمدن حقیقت رو پایمال میکنن برای اینکه میخوان شیوه زندگی گناهکارانه خودشون رو به حق جلوه بدن به عبارت دیگه اونها تصمیم گرفته بودند که چطور میخوان زندگی کنند. و هر باری که خدا تلاش میکرد که حقیقت خودش رو بهشون نشون بده اونها پایمالش میکردند اونها نمیخواستن حقیقتی رو که خدا میخواست در رابطه با طرز رفتار شایسته ی انسان نشون بده ببینه سپس پولس اتهاماتی از این قبیل وارد میکنه اونها قدرشناس نیستند اونها همیشه حقیقت رو به دروغ تغییر میدن اونها مخلوق رو بیشتر از خالق پرستش و خدمت میکنن اونها چیزهای طبیعی رو به غیر طبیعی تغییر میدن اونها حتی دوست ندارن که خدا رو در یادشون نگه دارن و نه تنها از گناه کردن لذت میبرن بلکه از دیدن گناه دیگران هم لذت میبرن پولس لیست کاملی از این اتهامات خدا بر علیه انسان رو ارائه میده. سپس پولس در مورد عکس عمل خدا نسبت به مردم با ما صحبت میکنه. برای اینکه این چیزها حقیقت انسان هست. پولس به ما میگه که خدا چطور به انسان پاسخ داده. سه بار در باب اول میگه چرا که خدا اونها رو به حال خودشون واگذاشت به این دلیل خدا اونها رو به حال خودشون واگذاشت خدا از اونها دست کشید. خوندن این قسمت از رومیان مثل خوندن کتاب پیدایشه. کتاب پیدایش در مورد سقوط خانواده انسانی همونطور که بود به ما میگه. در کتاب پیدایش، خدا به ما در مورد خانواده بشر همونطوری که بود میگه. برای اینکه خدا از ما میخواد که خانواده بشری رو همونطوری که هست درک کنیم. خدا میخواد خودمون رو همونطوری که واقعا هستیم درک کنیم. وقتی که به نامه پولس به رومیان میرسید، همون چیز صدق میکنه پولوس همه را به زمان گذشته میگه. مثل اینکه قبلا اتفاق افتاده اما چیزی که واقعا داره میگه اینه. این چیزیه که داره اتفاق میافته. اون داره برای شما اتفاق میافته. اون داره برای من اتفاق میفته، اون داره در تمام اطراف ما اتفاق میافته فقط چشماتون رو باز کنید و اون رو خواهید دید زمانی که پولوس سه بار میگه که خدا اونها رو رها کرده، منظور پولوس این نیست که خدا بشر رو رها کرده، یا اینکه خدا بشر رو امروز رها کرده چیزی که پولس داره میگه اینه که خدا به افراد اجازه میده که هر چیزی که میخوان داشته باشن این روشیه که خدا به افراد کار میکنه اول پولس لیستی از غضبهای خدا بر ضد انسان رو نشون میده سپس او پاسخهای خدا رو به مردم ثبت میکنه برای اینکه این چیزهایی هست که بشر میخواد و به خاطر اینکه خدا بشر رو موجودی دارای اختیار خلق کرده اون اصر رو نمیشکنه این پاسخ‌های خدا به بشره. خدا هر چیزی رو که میخوان تسلیمشون میکنه، خدا میگه از خودتون پذیرایی کنید. این زندگی شماست. شما باید از سفره عواقب بخورید. اما میتونید اون رو به هر روشی که میخواید داشته باشید. اون تقریبا مثل اینه که خدا برای زندگیمون برنامه‌ای داره و مثل اینکه زندگیمون مثل یک کتابه. خدا یه جدول از مفاهیم و همه نوع طرح در مورد اینکه داستان ما چجوری باید نوشته بشه داره. اگر چه در یک نقطه خاص خدا قلم رو به دست ما میده و میگه بیا داستان تو هر طوری که میخوای تموم کن برای اینکه این زندگی تو هست و تو مخلوقی مختار هستی شما باید با عواقب زندگی کنید اما میتونید اونو به هر روشی که میخواید داشته باشید پولوس وقتی که میگه خدا از اونها دست کشید منظورش دقیقا همینه خدا به اونها حق انتخاب داد و به ما هم میده در باب اول زمانی که پولوس این خبر بد رو به ما میده که گناهکاریم همچنین میگه زیرا هر چند خدا را شناختن ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردن بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. ادعای حکمت میکردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و تویور و بهایم و حشرات تبدیل نمودن. لحاظا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردن و مخلوق را عبادت و خدمت نمودن به عوض خالقی که تا آباد متبارک است. از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباست تسلیم نمود به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودن. و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده و عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایست به جا آورن. بعدش پولس میگه تمام ناراستی منظورش از تمام ناراستی اینه که نفستون رو از زنا، شرارت، طمع بدخواهی حسادت، قتل، مشاجرات و فریب نگه دارید. اون لیست کاملی تقریباً به بلندی حروف علف با ارائه میده. پولس بعد از اینکه با ما در مورد قذبهای خدا بر ضد انسان و پاسخهای خدا به انسان حرف میزنه، سپس به ما عواقب کارهای خودسرانه بشر رو میده. پولس تمامی این عواقب رو لیست میکنه و به ما میگه که این خانواده بشریه و این نتیجه ای هست که در نتیجه رها شدن ما به حال خودمون حاصل میشه. پولس در باب اول به ما گفته این همون روشی بود که خانواده بشری به وسیله سقوط کرد. او داره در مورد گناه درست همون طوری که در باب اول هست صحبت میکنه. پس اون می به ما در مورد گناه همون طوری که هست بگه. پولس کار دیگه ای را هم در باب اول انجام میده پولوس به ما چیزی در مورد اینکه خدا چیه میگه او به ما میگه که خدا عادله معنیش اینه که خدا درسته خدا یک استاندارد کامل از چیزیه که راستیه و از این گذشته خدا نمیتونه به ناعادلاتی اجازه بده خدا عادله و خدا از مخلوقاتش طلب میکنه که عادل باشن بنابراین خدا تمامی ناراستی رو در مخلوقاتش محکوم میکنه معنیش اینه که اینجا دو چیز در شخصیت خدا آشکار شد اولی ادالت خدا و بعد قذب خدا قذب خدا تجلیی هست که ما زیاد دوستش نداریم دیگه معایزه کردن یا درست دادن در مورد قذب خدا خیلی معمول نیست وقتی که بعضی از انبیا رو بررسی می کنیم مفهوم قذب خدا رو می بینیم من گفتم که قذب خدا طرز برخورد دائم و ثابت قدوسیت در مقابل عدم قدوسیته یا قذب خدا طرز برخورد دائم و استوار یک خدای مهربان در مقابل اون چیزهایی هست که محبوبش رو نابود می کنن. اینجا تعریف سومی هم هست قذب خدا در نهایت واکنش نابودی از سوی قدوسیت کامل در مقابل عدم قدوسیت هست یا قذب خدا اکسل عمل یک خدای مهربان در مقابل اون چیزهایی هست که محبوبش رو نابود می کنه یادتونه وقتی که سفنیای نبی رو بررسی میکردیم، من از این تصویر استفاده کردم بیاد دارید گفتم که یک مرد نجیب زاده با اخلاقی ملایم یک پدر دوست داشتنی به اداره پلیس اومد. یه مرد دیگه هم که مجرم و جانی و طبخ بود و دختر کوچک اون مرد یعنی دختر هفت ساله او رو نابود کرده بود او همونجا بود. دختر اون مرد توسط این مجرم مورد تجاوز قرار گرفته بود و به قطع رسیده بود. زمانی که اونها این مجرم رو به اداره پلیس آوردند تمام پلیسها ها داشتن جلوی اون پدر دوست داشتنی رو می گرفتن که دستش به اون مجرم که محبوبش رو نابود کرده بود نرسه. داشتن یک کاراکتر اونطوری که شما رو تبدیل به یک شخص نجیب میکنه ممکنه. اگرچه چه زمانی که کسی محبوب شما رو نابود میکنه، آیا قادر به ابراز احساسات دیگه هستین؟ این مسئله این سوال رو به وجود میاره، آیا خدا احساساتی هست؟ همه ما دوست داریم که معتقد باشیم که خدا محبته و هست؟ کتاب مقدس به ما میگه که محبت هستی اون چیزی که خدا هست. محبت ذات خدا هست. اما آیا این تمام چیزی که در شخصیت خدا وجود داره؟ فقط محبت؟ اگر خدا محبته و محبوبانش رو دوست داره، آیا خدا قادر به داوری کردن اون کسانی که میخوان محبوبانش رو هلاک کنن هست؟ در طول جنگ جهانی دوم برخی از مردان جوان خوب امریکایی به کشورهای بیگانه رفتن و مثل وحشیها در اقیانوس آرام و در عملیات اروپایی برای متوقف کردن سیستم نازی با دولت امپراتوری ژاپن که دوستان آمریکا رو تهدید میکردند جنگیدند در زمان صلح تک تک این افراد شهروندان مهربان و مطیع قانون هستند اما زمانی که دوستان، خانواده و اموالشان تهدید شده بود آیا اونها قادر به غضب کردن بودند البته که بودند حالا آیا این دور از عقل که فکر کنیم که خدا خدایی که خدای محبت زمانی که محبوبانش در مخاطره باشند و ببینه که دارن نابود میشن آیا نمیتونیم فکر کنیم که خدا قادره که قذب کنه؟ آیا خدا قادر به نابود کردن از طریق داوری متقابل در حال تهدید کردن برای نابودی محبوبانش هست؟ در اولین باب این رساله عالی پولس به رومیان پولس میخواد به ما پیغام انجیل رو بگه. خبر خوش در مورد عیسی مسیح. پولس میخواد به ما خبر خوش رو از طریق ایسای مسیح بگه که خدا قادر بود که گناهکاران رو عادل اعلان کنه. همونطور که پولس این مباحثه عالی رو در مورد اینکه چطور خدا این کارو میکنه شروع میکنه دو چیز رو در مورد خدا به ما میگه. اول از همه پولس به ما میگه که انجیل ادالت خدا را آشکار میکنه. خدا عادله و کاملا از مخلوقاتش میخواد که عادل باشن خدا ناعدالتی رو محکوم میکنه بنابراین پولس میخواد به ما بگه که این انجیل عیسی مسیح قذب خدا در برابر تمام ناعدالتی رو هم آشکار میکنه پولوس میخواد در باب اول به ما بگه که ابناه بشر ناعادل هستند. این قذبی هست که خدا بر علیه بشر میاره بنا به گفته پولس بشر پارسا نیست در حالی که خدا عادله. خدا اجازه ناعادلاتی رو به بشر نمیده. خدا طالب اینه که بشر عادل باشه. خدا باید ناعادلاتی بشر رو محکوم کنه. اگرچه در این بابهای ابتدایی نامه پولس به رومیان پولس میخواد به ما خبر خوش در مورد کاری که خدا انجام داده رو بگه. پولس میخواد به ما بگه که چطور خدا از طریق عیسی مسیح به این دنیا اومد و اعلام کرد آنانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اعتماد کنن عادل شمرده میشوند نجاتی که ما را از طریق عیسی مسیح به بهشت میبره این همون پیغام پولس به رومیانه که برای من و شما هم هست رومیان رو بخونید و از خدا بخواید که برای درد کردن این حقایق عالی بهتون کمک کنه موارد خیلی زیادی در این نامه به رومیان وجود داره سعی کنید جلسه آینده هم در ی بررسی کتاب مقدس به ما ملحق بشید عزیزان من متشکرم که با ما همراه بودید. ما مطالعه یکی از مهمترین بخش های الهیاتی کتاب مقدس رو شروع کردیم. مهمترین مسئله اینه که طی نامه پولس هست که ما اصول عقیدتی مسیحی رو و نحوی کاربرد اونها رو در زندگی خودمون یاد میگیریم. از شما درخواست میکنم که برنامه توری رو طوری تنظیم کنید که بتونید در جلسات آینده در ادامه بررسی رسالات پولس با ما همراه باشید. در جلسه بعدی ما به بررسی رساله رومیان ادامه خواهیم داد. تا برنامه بعدی دعا می کنیم فیض و رحمت عظیم خداوند بر شما و خونواده شما قرار بگیره.